نوار شماره 24 سی از سری نوارهای رادیو ایران، شاعران قصه میگویند، قسمت سوم 20 رامین، تکسیر شده در استودیوی کتابخانه ای گویای سازمان ملی رفاه نابینایان ایران تهران، به تاریخ دهم ده اسفند ماه 1355 شمسی، تکثیر کنندگان مراد قرهقلی، عبدالله قفاری. Thank you. قصه میگویم هست اندر صورت هر قصه ای بینان راز معنی هستی. ویس و رامین قسمت سوم در نخستین و دومین بخش از داستان ویسرامین، اثر فخر الدین اسعد گرگانی، سخنسرای نامی قرن پنجم هجری، صاحب دلان را رهاوردی بس جنفضا آوردیم سخن به دانجا رسید که شهرو برخلاف پیمانی که با شاه موبد نهاده بود، دخترش را به همسری او در نیاورد. شاه موبد خشمگین شد، و با ویرو همسر ویس از کارزار در کارزار درآمد. اما شکست یافت و آنگاه به اشاره برادرش زرد شهرو را با سیم و زر بفریفت و ویس را با خود به مرو برد رامین برادر شاه موبد به دام عشق ویس افتاد و ندیمه ویس را از این قصد آگاه ساخت ندیمه را دل به رامین بسوخت و از ویس که شبان و روزان از دوری مادر و همسرش در آتش اندوه میگداخت خواست تا با رامین روی ملاطفت نماید اما ویس سخت برا شفت و دایرا از سعیش در راه آشنایی و دلدادگی او با رامین نکوهش ها کرد اکنون دنباله داستان تقدیم صاحب دالان می شود امین هر چه دای گفت بشنید به چشمش روز روشن تیره گردید را گفت مردان جهان پاک نه یک سر بی وفا باشند و ناپاک نه هرکس را به چوبی راند باید نه هرکس را به نامی خواند باید گرو دیده است راه زشت کیشان مرا نشمرد باید همزه ایشان گناهی را که من هرگز نکردم به دلدر زوگمانی هم نبردم چه باید کرد بیهود ملامت نخو باید ملامت بر سلامت پیام من بگو آن سیمتن را شکست زلفکان پرشکن را بگو ما گاو Come on kumane. من با تو خورم صد گون کنم با تو به سوگند ای بگو ماها نگارا خورچشما پری رویا بهارا تیز خشما به مهراندر به پیوند آشنایی مبر من گمان بیوفایی که من با تو خورم صد گونه سوگند کنم با تو بدن سوگند پیوند بشد دایز پیشش با دل ریش مرورا درد بر دل زانه او بیش چو پیش وی شد بنشست خاموش دل از تیمار رو اندیشه پر از جوش دگر باره سخنهای نگارین چو در پیوسته کرد از بحر رامین بگفت ای شاه خوبان ماه هوران تو را مردند نزدیکان و دوران ولیکن چون برندیشم زرامین آن رخصار زرد و اشک خونین ندیدستم بدین بیچارگی کس، به صد عاشق یکی تیمار او بست همی ترسم که او ناگه بمیرد به مرگ او مرا یزدان بگیرد تو را یزدان چو این روی نکوداد به جان من که خود از بهر او داد همیتا تا سوگندان همی خرد یکایه ویس را باور کرد فزون شد در دلش بخشایش رام گرفت از دوستی آرایش رام ستیزش کم شد و مهرش بیافزود. پدید آمد از آتش لختکی دود همی پیچید سر را بر بهانه گهی دیدی زمین گه آسمانه تنش از شرم همچون چشمه آب چکان زو خوی چمروارید خوشاب چون این باشد روان مهر که بخشایش کنند بر نیک یارن همی جادو پیر که از این بار از کمانش راست شد تیر و افسون نرم شد انسروازاد رمید گور در دام وی افتاد رامین در بزم گردان و بزرگان نشسته بود که دایه ویس را نهانی به دنجا آورد و رامین را از دور به دور بنمود ویس مفتون جمال رامین شد اما او را از کرده خیش شرم بسیار آمد و در دل به پرهیز و دوری از عشق و دیدار محبوب رغبت یافت نشسته ویس بر بالای گلشند ز روی ویس گلشن گشته روشن بیاورد را دای پنهان به بسیاری فریب و رنگ و دستان نشانده میان بام گلشن نهاده چشم بر سوراخ برزن همی گفتی ببین ای جان مادر که باشد هیچکس از وین کوتر نروی استین که یزدانی نگار است سرای شا خرم بهار است همه تاویس رامین را همیدید. تو گفتی جان شیرین را همیدید. چون نیکن در رخ رامین نگه کرد و و مهر ویرو را تبه کرد پس کنان با دل همی گفت که بودی گر شدی رامین مرا جفت کنون که از مادر و فرخ برادر جدا ماندم چرا سوزم براذر چرا چندین به تنهایی نشینم بلا تا کی کشم نه آهنینم از این بهتر دلارایی نیابم سر از پیمان و فرمانش نتابم نکردین دوستی بر دای پیدا اگر چه گشته بود از عشق شیدا مرورا گفت رامین همچنان است که تو گفتی و بس روشن روان است هنرهای بزرگ و نیک داند به فروخ بخت ویرو نیک ماند ولیکن آنکه میخواهد نیابد رخم گرمه بود بر وی نه خود را همچنین بیمار خواهم نه نیز او را در این تیمار خواهم چو ویس آمد به زیر از بام گلشن به چشمش تیره شد خورشید روشن گهی اندیشه بروی زور کردی هوا چشم خرد را کور کردی گهی گفتی چه خواهد برد بر من جزون که از من برایت کام دشمن نه هرگز مه باننگی و یا کام دلی رنجی بیارزید اگر آزادی باشد چرامین چرا پرهیزل از بدخواه چندین گهی شرمش هوا را دور کردی خیرت اندیشه را دستور کردی بترسیدی زننگ جاودانی زباد افراه کار این جهانی چو از یزدان و از دوزخ بترسید خیرت مرشرم را بر مهر بگزید پشیمان شد مهر و مهر کاری گزید آزادگی و ترس کاری بران به دل از هیچ گونه نپیوندد به کردار نمونه دیمه با شادمانی بسیار نزد رامین شتافت و مجدش برد که یار بیمه را دل به دود رحم آمده و راه سازگاری در پیش گرفته است نبود آگه ز کار ویست دایه که او جان را زنیکی داد مایه به رامین شد مرو را مجدگان برد که شاخه بخت سر بر آسمان برد رمید ویست لختی رام تر شد آن تندی و بدسازی دگر شد چنان دانم که با تو سر در آرد. درخت اندوهت شادی بر چنان دلشاد شد آزاد رامین که مرده باز یابد جان شیرین زمین را بوسه زد در پیش دایه بدو گفت ای بدانش نیک مایه هر آن کامی که تو خواهی بجویم به کردار و به گنج و آبرویم جز انسان نیکویی ها گفت بسیار نهاد از پیش او سه بدر دینار نپس رفتان که دادش دایرا رام دو گفت ای شاه فرخنده برکان. ترا نزد بحر چیزی دوست دارم که من خود خواسته بسیار دارم توی چشم مرا خرشید روشن مرا دیدار تو باید نداشن یکی انگشتری برداشت سیمین که دارد یادگار شاه رامین ندیمه هشادمان از نزد او بازگشت و به دیدار ویس رفت اما او را آشفته و پریشان یافت که از اندیشه عشق رامین پشیمان گشته و در گوشهای شرمگین نشسته است دایه در خشم شد و ویس را تهدید کرد که اگر دل به رامی نسپارد ترکش خواهد نمود ویس گریستن گرفت زاری ها کرد و ندیم خواست که او را تنها نگذارد و از مرو نرود چو پیش ویس شد او را دوژم دید زگریه در کنارش آب زم دید دگر ره ویس با دایه براشفت. ز شرم و بیم یزدانش سخن گفت که من خود چون برندی شمز یزدان نرامین بایدم نشرم کیهان اگر رامین خوشست و مهربان است از او بهتر بهشت جافدان است نکردم نیکنم هرگز تباهی اگر روزم چو شب گیرد سیاهی چو بشتید این سخن دایی از آن ما گرفت از شعار کردن طبع روبا به گفت ای نیاز جان دایه جز تندی نداری هیچ مایه چرا بر یک سخن هرگز نپایی به گردانی چو چرخ آسیابی اگر تو این چنین بدخو بمانی نشاید کرد با تو زندگانی زمین مرو با موبت تراباد زمین ماه با شهر و مراباد شوم با مادرت خرم نشینم تو را با این همه تندی نبینم جوابش داد ویس و گفت چندین کرا در دل گرفتی مهر رامین که آشفته است بخت و روزگارم که بد فرجام و دشوار است کارم ترادل چون دهد از من بریدن به رفتن با دگر کس آرمیدن دگر ره گفت ای ماه خوبی <موسیقی> مشو گمراه تو از راه خوبی قضا بر کار تو رفت و بیاسود چه سودکنون از این گفتار بی سود به یک سونه سخنهای نگارین بگو تا کی ببینی روی رامین مرو را در پناهت کی پذیری در این کارش چگونه دستگیری تو از مردان ندیدی شادمانی از خوشی مردان ندانی جوابش داد ویس ما پیچر بهشت جاودان از مرد خوشتر اگر تو کم کنی پند و فریبم من از شادی و از مردان شکیبم مرا آزار تو سخت است بر دل وگرنه هیچ کامم نیست در دل مرا گر بیم آزارت نبودی بسارن که رامین آزمودی نگر شاهین شدی در من رسیدی و یا بادی شدی بر من وزیدی کنون کوشش بدان کن تا توانی که این راز از جهان باشد نهانی تو خود دانی که موبت چون بزرگ است به گاه خشم راندن چون سطرگ است اگر روزی برد بر من گمانی از او ما را به جان باشد زیانی همین تا این سخن باشد نهفته بود بر ما بلا را چشم خفته سرانجام ندیمه به افزون خیش ویس را به سازگاری و دیدار رامین کشاند و به هنگامی که شاه موبت از معرف بیرون شد تا به کوهستان رود ویس و رامین از دیدار یک دیگر برخوردار شدند و در کنار هم آرمیدند چو خواهد بود درختی راست بالا چو بر رویت بود زاغاز پیدا همیدون چون بود سالی دل پدید آیچ خوشی همز نوروز چنان چون بود کار ویس و رامین که است آغازش آینده به آین اگر چه درد دل بسیار بردند به دردندر خوشی بسیار کردند چو ویس از میر بر رامین ببخشود زمان زنگ کین از دلش بزدود در آن هفته به یکدیگر رسیدند چنان کس هیچ کس رنجی ندیدند شنشه بار بربست از خراسان سراپرده بزد بر راه گرگن آنجا سوی کوهستان سفر کرد چو آمد بر ریو ساوه گذر کرد بماند آسود رامین در خراسان کجا او خیشتن را کرد نالان. شنشه رفته از مرو نوائین به به بمانده ویس و رامین نخستین روز بنشستان پری روی پر از ناز و پر از رنگ و پر از بوی باغ و بوی ویس در هم روان خسته را بودند مرهم بهشتی بود گویی کاخ و ایوان مرور آهور ویس و داوی رزون یهی آراست ویس دلستان را یهی ای ایوان و خرم را چو گمبت ز بیگان تویی کرد ز راه بام رامین را درآورد چو رامین آمدن در گنبد شاه نگمبت دید گردون دید باما اگرچه دید روی ویس دلبر نیامد دل را دیدار باور دل بیمارش از شادی چنان شد که گفتی پیر بود از سر جوان شد چو با ماه جان افروز بنشست ز جانش دود آتش سوز بنشست به دو گفت ای بشت جاودانی به تو یزدان نموده نیکنامی تو از خوبی کنن چون آفتابی خونک آن کس که تو بروی بتابی تو را داده است بختان روشنایی که زنگ از جان بدبختان زدایی چوبش این سخن ویسه پریزات به شرم و ناز و کشی پاسخش داد. به دو گفت ای جوان مرد جوان بخت بسی تیمار دیدم در جهان سخت ندیدم هیچ تیماری بدین سان که شد بر چشم من رسوایی آسان دو کس یافتم این زشت مایه یکی از بخت خود دیگر زدایه بگو تا تو چه خواهی کرد با من ز دوستان و کام دشمن بگردد سال و ماه و تو بگردی پشیمانیت باشد زینکه که کردی نگر باره زبان بکشاد رامین به تو گفت